موقعی که صاحبخانه صبحانه برایم آورد هنوز روی لبه تخت خواب نشسته بودم. نامه پدر را به او دادم و او در حالی که من قهوه میریختم و لقمم را درست میکردم نامه را خواند. او گفت: « معلومه که به آنجا خواهید رفت بعد هم نامه را روی سینی کنار شکر پاش گذاشت. نسبت به او مهربان باشید و او را به صرف ناهار دعوت کنید. به این فکر کنید که این دختران جوان اغلب بیش از آنچه وانمود می کنند گرسنه هستند. او از اتاق بیرون رفت چون تلفن زنگ زد و من شنیدم که او دوباره می گفت: بله، بله، من پیغام شما را به او خواهم داد. بله. و دوباره به اتاق برگشت و گفت: خانمی در خیابان کور베 تلفن کرده است پای تلفن اشک میریخت چون از ماشین لباسشویی سردر نمیآورد. او از شما خواهش می کند که فوراً به سراغش بروید. گفتم، من نمیتوانم بروم. اول باید به تلفن‌های دیروز رسیدگی کنم. صاحب خانم شانه را بالا انداخت و رفت. مصبهانم را خوردم، خودم را شستم و به دختر مولر که اصلاً هیچ شناختی نسبت به او نداشتم فکر می کردم. او قرار بود ابتدای ماه فوریه به شهر بیاید. و من از نامه پدرش خند هم گرفته بود از خطش که آن را از تسیی برگه های امتحان ناموفق زبان انگلیسی هم میشناختم و همینطور از سبکش مولر آن زمان نوشته بود دختر من هدویک در ماه فوریه به شهر خواهد آمد تا در دانشسرای تعلیم و تربیت شروع به تحصیل کند از شما سپاسگزار خواهم بود اگر بتوانید به من کمک کنید و برای او یک اتاق پیدا کنید. مطمئنم شما مرا دقیقا به خاطر نمیآورید. من مدیر مدرسه هوفمان فالرز لبن هستم که شما هم چند سالی آنجا مشغول تحصیل بودید. او به شکلی محترمان این واقعیت را بیان کرد که من در سن 16 سالگی، بعد از آنکه برای دومین بار در کلاس چهار روم رد شده بودم، مدرسه را ترک کردم در ادامه چنین نوشته بود شاید هم مرا به یاد داشته باشید و امیدوارم که خواهش من شما را زیاد به دردسر نیندازد اتاقی را که برای دخترم در نظر می گیرید باید نه خیلی زیبا و نه زشت باشد فقط تا آنجا که ممکن است از دانشسرا خیلی دور نباشد ولی اگر می شود ترتیبی داد در منطقی از شهر واقع شده باشد که با خصوصیات و ویژگی های شهری نباشد و علاوه بر این اجازه میخواهم تأکید کنم که قیمت اتاق مورد نظر باید مناسب باشد حین خواندن نام مولر برایم به شکل شخصی کاملا متفاوت سوایان تصوری که از او در ذهنم داشتم درآمد. به نظرم او انسانی نرم خوف، و تا لا لاعبالی بود اما حالا تصویر مردی خورده بین و لعیم در ذهنم شکل می گرفت. که با آنچه از او در خاطر داشتم به هیچ وجه مطابقت نداشت. همان واژه مناسب کافی بود مرا که به هیچ وجه تصویر نفرت آوری در ذهنم از او نداشتم متنفر کند. چون من از واژه قیمت مناسب نفرت داشتم. پدرم هم از روزگاری تعریف میکرد که نیم کیلو کره یک مارک و اجاره یک اتاق مبلمان شده با صبحانه ده مارک بود. زمانهایی که آدم با سی فنیک در جیب میتوانست با دختری به رخص برود و در ارتباط با چنین حکایت هایی از آن زمان واژه مناسب با چنان آهنگ شکف آمیزی بیان میشود که گویی شنونده قصه گناهکار است که کره حالا چهار برابر شده است. وقتی به عنوان کارآموزی شانزده ساله آن هم تنها به شهر آمدم مجبور بودم که قیمت همه چیزها را بدانم چون توان پرداخت آنها را نداشتم. قیمت قیمتها را به من یاد داد. فکر نان تازه مرا کاملا از خود بیخود خود می کرد. و من غروبها ساعت های متمادی بی هدف در شهر پرسه می زدم و به هیچ چیز دیگر فکر نمی کردم. بجز. نان چشمهایم میسوخت زانوهایم از ضعف خم می میشد و حس میکردم چیزی مثل گرگ درنده در وجودم است نان من مثل آدمی مورفینی معتاد به نان بودم از خودم وحشت داشتم و دائم به مردی فکر میکردم که یک مرتبه در خوابگاه کارآموزان با استفاده از تصاویر در یک هیئت اکتشافی در قطب شمال نطقی ایراد کرد. او برای من تعریف کرد که آنها چگونه ماهی تازه سید شده را پاره می کردند و خام قورت می دادند. حتی حالا هم اغلب اوقات وقتی حقوقم را می گیرم با از و پول خوردهایی که در جیب دارم در شهر پرسه می زنم و خاطرات ترس بیش از آن روزها سراسر وجودم را فرا میگیرد و من، نان ای را که در ویترین نانوایی قرار دارد میخرم دو دوتا نان را که به نظرم خیلی قشنگ می رسن می و در نانوایی بعدی یکی دیگر و نان فانتزی‌های های کوچکه برشته دیگر آنقدر نان میخرم که مجبور می شوم بعدن بخشی از آن را برای صاحب خانم روی میزش بسخانه بگذارم چون قسمت چهارم نانی که خریده ام را نمی توانم بخورم و فکر اینکه ممکن است نانها ها بیاد شوند، مثل خور وجودم را می‌خورد. ماهای اول بعد از مرگ مادر بدترین دوران زندگیم بود. حوصله نداشتم که دوره کارآموزی الکتریکی را ادامه دهم. اما قبل از آن در خیلی از ها تلاش کرده بودم. کارآموزی بانک، فروشندگی و کارآموزی نجاری. هر کدام از این دوره ها دقیقا دو ماه به طول می انجامید و من از شغل جدید خود نیز متنفر بودم آنقدر از استادکارم متنفر میشدم که وقتی شبها در ترانوهای شلوغ و مملو از جمعیت به خوابگاه می رفتم اغلب سرم گیج میرفت. با این وجود دوره کاراموزیم را تمام کردم زیرا مصمم شده بودم از ما پیگیریم را به همه ثابت کنم چهار بار در هفته اجازه داشتم که شبها به بیمارستان سندوییننسنس بروم جایی که یکی از و دور مادر به عنوان خواهر در آشپزخانه کار میکرد. آنجا سوپ و بعضی وقتها هم نان گیرم میآد و من همیشه روی نیمکت جلوی دریچه آشپزخانه چهار یا پنج نفر گرسن دیگر را میدیدم که غالبا مردان پیری بودند که به محض باز شدن دریچه آشپزخانه و دیدن بازوهای گرد و توپل خوهر کلارا دستان خود را به آن سود راز می کردند. و من باید بر خودم مسلط می شدم که ظرف سوپ را از دست کلارا نکشم. برنامه سوپ دادن همیشه دیر وقت، وقتی بیماران به خواب رفته بودند می شد. آنها دوست نداشتند شک بیماران را برانگیزند که با این کارشان درسوزی و لطفی بیمورد در حق ما می کردند. به راههایی که ما در آن می میزدیم و غذا میخوردیم فقط دوتا لامپ پانده وات روشنایی میبخشید اورد کشیدن ما را اغلب صدای دریچه آشپزخانه که برای دومین بار باز میشد قطع می شد، کرد خواهررکلا با های پر از پودینگ را روی لبه می میگذاشت. این پودینگ همیشه قرمز بود سرخی آن مانند آبناد چوبی های جشن های وقتی ما به سوی دریچه می بردیم، خواهر کلارا در آشپزخانه می و آه کشان سرش را تکان میداد و چیزی نمی ماند که زیر گریه بزند و عشق بریزد. آن وقت می گفت، کمی صبر کنید. و یک بار دیگر به آشپزخانه میرفت و با یک پارچه پر از سس برمیگشت. سس به رنگ زرد گردی بود به زردی خورشی در تابلوهایی که از یک شنبه ها کشیده میشوند و ماسوپ ها و پودیگ ها رو می سس را هم می و منتظر میماندیم که ببینیم آیا دریچه آشپزخانه یک بار دیگر هم باز خواهد شد یا نه بعضی وقتها یک تک نان هم به ما میدادند و یک بار در ما هم خواهر کلارا سهمیه سیگار خودش را بین ما تقسیم میکرد سهم هر نفر از ما یک یا دو نخ سیگارهای قیمتی سفید رنگ بود. اما خوهر کلارا اکثران برای این دریچه را باز می کرد که به ما بگوید دیگر هیچ چیز ندارد هر ماه گروه هایی که به این شکل توسط خوهر کلارا تقضیه می شدند عوض می شدند و ما وارد گروه دیگری می شدیم که اجازه داشت هفته چهار مرتبه بیاید و این دفعه چهار با یکشنبه شمبه تلاقی پیدا می کرد و روزهای یکشنبه، گاهی گاهی زمینی با ساس گوشت می دادند. و من با بی به انتظار پایان ماه می نشستم تا به گروه دیگر ملحق شوم بی همچون همچن زندانی در بند که در انتظار پایان محکومیت خیش است. از آن موقع به بعد از واجه مناسب و ارزان متنفر شدم. چون من این لغت را همیشه از دهان استادکارم می شنیدم. ویگوبر نمونه یک بارز یک انسان صادق و شرافتمند بود. او پرکار بود و از حرفش واقعا سر در می آورد و حتی به نوعی خوش قلب و رعوف هم بود. هنوز شانزده سالم تمام نشده بود که کار را نزد وی آغاز کردم. او آن موقع دو دستیار و چهار کارآموز داشت و علاوه بر آن یک استادکار که غالبا در کارخانه کوچکی که ویکوبر آن وقت تا تازه تأسیس کرده بود به کار اشتغال داشت. ویگوبر قیافه شکیل و دلپسندی داشت. سالم و سرحال بود و حتی شکل پاک دامنیش هم جالب و دلنگیز بود. اوایل از او فقط همینطوری خوشم نمی آمد. اما دو ماه بعد به دلیل بوهایی که از آشپزخانهش می آمد از او متنفر شدم. بوی چیزهایی به مشامم می رسید که هرگز آنها را نچشیده بودم بوی کیک تازه بوی گوشت سرخ شده و چربی و این گرسنگی لعنتی که همچون حیوان چهارپایی در دل و رودم میلولید تا و تحمل این بوها را نداشت سرکش از بر میخواست و مرا مورد حمله قرار میداد ترش میکردم و از ویک ببر متنفر میشدم چون من با دو تک نانی که به آن مربای قرمز رنگ چسبیده بود، صبحها سر کار میرفتم و ظهرها هم مجبور بودم. ظرف پر از سوپ را که سرد شده بود در یکی از کارگاه های ساختمانی گرم کنم. اما قالبا وسط راه آن را میبلدم. وقتی سر کار می رسیدم قابلمه خالی در کیف ابزارم تلق طلق می کرد. و من امیدوار بودم که یکی از مشتری های زن به من یک بشغاب سوپ، یا یک چیز قابل خوردن بدهد. اکثرا چیزی گیرم میآمد آن موقع پسر خجالتی خیلی ساکت و بلنگ آمد بودم که به نظر نمیرسید هیچکس از گرگی که در درون من خانه کرده بود بویی برده باشد. یک بار از زنی که متوجه نبود من به حرفهایش گوش می دهم. شنیدم که راجع به من صحبت می کرد. او ضمن تعریف و تمجید از من در پایان گفت، جوان دست و دلباز و نجیب و شریفی به نظر می رسد. آن وقت به خودم گفتم پس تو نجیب و شریف به نظر می رسی و خودم را دقیقا در ای که در سالن لباسشویی خوابگاه کارآموزان آویزان بود، فرنداز کردم. به صورت رنگ پریده و دراز خودم نگاهی انداختم. لپایم را به جلو عقب دادم و با خود گفتم، پس قیافه یک آدم شریف و محترم اینطوری است. و با صدای بلند به چهرم در آینه گفتم دلم می خواهد چیزی برای خوردن داشته باشم. آن وقتا پدرم همیشه می نوشت که یک بار برای دیدنم خواهد آمد تا ببیند من چگونه زندگی می کنم. اما او نیامد. هر وقت که به خانه میرفتم از من می پرسید که شهر چگونه است؟ و من میبایستی برایش از بازار سیاه تعریف میکردم. از خوابگاه کاراموزان، از کارم و او مات و مبهوت سرش را تکان میداد. و وقتی من از گرستنگی حرف میزدم، خیلی در این بار صحبت نمیکردم، اما بعضی مواقع از دهنم تر میرفت. آن وقت پدر با عجله و آشپزخانه خانه میرفت و برایم هر چه خوردنی بود میآورد. سیب، نان، مارگارین و بعضی وقتها هم سیب زمینی میبارید و در مایتابه میگذاشت تا سیب زمینی سرخ کرده درست کند. یک بار متحیر با یک کلم قرمز از آشپزخانه آمد و گفت: فقط همین را توانستم پیدا کنم. فکر می کنم بتوان با آن آنسات درست کرد. اما بعدا هرگز چیزی به من مزه نداد. احساس میکردم کار نادرستی کرده یا اینکه به گونه ای شهر را تعریف کرده که با حقیقت منافات داشت. برایش قیمت نان، کره و زغال را می و او هر بار با تعجب جا می خورد. اما به نظر می رسید که آن را زود فراموش می کند. با این وجود گاهی وقت برایم پول می فرستاد و می نوش که با آن نان بخرم. وقتی پول پدر می رسید به بازار سیاه می رفتم و برای خودم یک قرص کامل نان که یک کیلو نیم یا یک کیلو از داشت و کاملا تازه بود از نانوایی می خریدم. آنگاه روی نیمکتی یا روی خرابه ای می نشستم، نان را از وسط نصف می کردم و با دست های کفم تکه از آن را میباریدم و در دهان میگذاشتم. گاهی وقتها که هنوز از نان بخار بلند میشد و وسط آن کاملا گرم بود لحظات این احساس را داشتم که موجودی زنده در دستهای من قرار گرفته است. که دارم آن را تکه تک میکنم و به مردی فکر کردم که برای ما درباره سفر هیئت اکتشافی به قطب شمال ناتخ میکرد و توضیح میداد که چگونه ماهیهای زنده را پاره میکردند و خام قورت میدادند اغلب یک قسمت از نان را در کاغذ روزنامه میپیچیدم و در کیف ابزارم میگذاشتم اما بعد از صد قدم سر جای خود می بسته را دوباره باز می‌کردم و مانده نان را ایستاده در خیابان می‌خوردم. اگر نانی را که همراه داشتم یک کیلو نیم بود، آنقدر سیر می که در خوابگاه کاراموزان شام خود را به یک نفر دیگر می و بلافاصله فاصله به رخت خواب میرفتم. آن وقت تنها در آسایشگاه پتو را به دور خودم می‌پیچیدم. در حالی که معدم سنگین از نان شیرین و تازه بود. و از شدت سیری بی و مبهود بودم. ساعت هشت شب بود و من می توانستم یازده ساعت بخوابم، چون همیشه کم بود خواب داشتم. شاید آن موقع برای پدر بجز بیماری مادر همه چیز علا بود. در هر حال من هر وقت که منزل بودم سعی می کردم از واجه گرسنگی و هر گونه کنایه و ای به تمنای دل و کمبودهایم پریز کنم. چون میدانستم و میدیدم که پدر خیلی کمتر از من برای خوردن داشت. صورتش زرد و تکیده بود و گویی در دنیایی دیگر سیر می کند. انگاه با هم به ملاقات مادر می رفتیم. او هم همیشه به من غذا تعارف می کرد. وقتی کنار تخت خوابش می به من چیزهایی میداد که یا از غذاهای خودش کنار گذاشته بود. یا از ملاقات کنندگان گرفته بود میوه و یا یک شیشه شیر یک تکه کیک اما من نمی توانستم لب به چیزی بزنم چون می دانستم که او مبتلا به بیماری ریویست و می بایستی خوب غذا می خورد اما او به من اصرار میکرد و می گفت اگر نخورم فاسد می شوند و پدر می گفت کلر تو باید غذا بخوری تو باید دوباره سلامتیت را به دست بیاوری مادر عشق می ریخت سرش را به طرف دیگر برمیگرداند و من از خوراکی هایی که به من تعارف کرده بود نمی توانستم بخورم همتختی او زن بیماری بود که من در چشمهایش گرگ را می دیدم و می دانستم آنچه از غذای مادر باقی می ماند را او می خورد و من دستهای داغ مادر را روی بازوهایم حس می کردم و در چشمانش وحشت از حرس همتختیش را می دیدم. مادر به من التماس میکرد و میگفت عزیزم بخور من میدانم که تو گرسنه هستی و میدانم که در شهر چه خبر است. اما من فقط سرم را تکان میدادم دست را که بازوهایم را میفشرد برمیداشتم و بیانکه حرفی بزنم به او التماس میکردم که دیگر به من اصرار نکند. او لبخندی میزد و دیگر از غذا حرفی نمیزد. من میدانستم که او منظور مرا من متوجه شده است می گفتم شاید اگر در خانه خودمان یا یک اتاق دیگر بودی بهتر می شدی اما مادر می گفت اتاق دیگری وجود ندارد و به خانه هم اجازه نمی دهند که بروم زیرا بیماری من مصری است وقتی بعدن پدر و من با دکترش صحبت می کردیم از او به دلیل بی تفاوتیش نسبت به مادر متنفر می شدم. او وقتی با ما صحبت می کرد در فکر چیز دیگری بود. در حالی که به سالهای پدر پاسخ می داد، به در و یا از پنجره به بیرون نگاه می کرد. و من از حرکات ظریف لب سرخ او می فهمیدم که مادر از دست رفتنی است. اما زنی که هم تختی مادرم بود، زودتر مرد وقتی ما یکشنبه زور به آنجا رسیدیم، تازه مرده بود، تخت خالی بود و شوهرش که احتمالاً لحظاتی بعد از مرگ زنش اطلاع پیدا کرده بود به اتاق بیمار آمد و در کمد متعلقات بی ارزش و کوچک او را جمع جور کرد سنجاقهای سر و یک گوتی کرم پودر لباس زیر و یک کبرید او این کار را با شتاب و ساکت بدون اینکه به ما سلام کند انجام می داد. او کتا قد و نحیف بود شبیه یک اردک ماهی بود پوست تیر و چشمان کوچک و کاملا گردی داشت و موقعی که پرستار بخش آمد به خاطر یک قوتی کنسرو گوشت که در کمد پیدا نکرده بود سرش داد و فریاد کشید کنسرو گوشت کجاست؟ دیروز آن را برایش آورده بودم دیشب ساعت ده وقتی از سر کار آمدم و اگر او شب قبل مرده باشد نمیتواند آن را خورده باشد او سنجاق سرش را جلوی صورت پرستار بخش گرفت. گوشه ی کف زرد رنگی نشسته بود. مدام داد میزد، گوشت کجاست؟ من آن گوش را می خواهم. اگر گوشت را به من برنگردانید تمام بیمارستان را زیر و رو خواهم کرد. پرستار قرمز شد و شروع به داد و فریاد زدن کرد. و من از حالت چهرش حدث می زدم که خود او قوتی کنسرو گوشت را دزدیده است. مردک به زمین و زمان ناسزا می گفت و اشیاء را رو روی زمین پرت میکرد و زیر پایش آنها را له می کرد و داد میزد. من گوشت را می خواهم. فاحشهها، ها دزدها، ها اندکی بعد پدر به طرف راه رو دوید تا یک نفر را برای کمک بیاورد. من هم خودم را میان پرستار و مردک قرار دادم. چون او شروع به کتک زدن و پرستار کرده بود اما او جسته ریزی داشت و چالاک بود خیلی چابکتر از من و توانست با مشتهای کوچک و سیاهش به سینه پرستار بزند دندانهایش بر اثر خشم و کاملاً هویدا بود درست مثل دندانهای موشهای صحرایی که آشپز زن خوابگاه کارآموزی به دام انداخته بود او فریاد میزد گوشت ای بدکار گوشت تا اینکه پدر با دو نگهبان وارد اتاق شد آنها او را گرفتند و کشان کشان به راه را بردند اما از پشت در بسته هم هنوز صدای او را می شنیدم که فریاد می زد، ای دوست ها گوشت را به من پس بدهید وقتی بیرون سکوت برقرار شد به یکدیگر نگاه کردیم و مادر به آرامی گفت هر بار که شوهرش میآمد سر پولی که زن به او بابت خرید مواد غذایی میداد با هم دعوا میکردند مردک همیشه سر زن بیمارش فریاد میزد و میگفت که قیمتها باز هم بالا رفتهاند و زن حرفهای او را هرکس باور نمیکرد حرفهایی که به هم میزدند خیلی زشت و زننده بود اما با این وجود زن بیمار همیشه به شوهرش پول می مادر سکوت کرد و به تخت زن از دنیا رفته نگاهی انداخت و آرام گفت بیست سال بود که با هم ازدواج کرده بودند و تنها پسرشان هم در جنگ کشته شده بود بعضی وقتها عکس پسرش را از ما بیرون میآورد و گریه میکرد عکس هنوز آنجاست. پول هم همینطور اما مردک آنها را پیدا نکرده است و آرامتر از قبل گفت گوشت را زن خودش خورد و من سعی کردم صحنه ای را که زن گوشت را خورده است برای خود مجسم کنم زن سییه چردهی هرریز حتی در حال مرگ کنار تخت مادر گوشت را از قوطی کنسرت میخورد پدر بعد از مرگ مادر برایم اغلب نامه مینوشت متن نامه هایش طولانی تر میشدند مینوشت که خواهد آمد برای اینکه ببیند من چگونه زندگی می اما هرگز نیامد و من هفت سال تمام تنها در شهر زندگی کردم. آن زمان بعد از مرگ مادر به من پیشنهاد کرد که محل کار آموزیم را تغییر دهم و در که دنبال جایی بگردم. اما من می در شهر بمانم چون تازه داشتم یاد می گرفتم که گلیم خودم را به تنهایی از آب بیرون بکشم. چون داشتم سر از ریزه ها با حیله های ویک در و برایم مهم بود که درهم رو پیش ویب اتمان برسانم. با دختری آشنا شدم که نامش ورونیکا بود. او در دفتر ویک کار می‌کرد. کرد. موبور و خندان بود. اکثر اوقات با هم بودیم. شبهای تابستان کنار رودخانه راین با هم قدم میزدیم و گردش می کردیم. یا می‌رفتیم بستنی بستنه می و من او را وقتی در تاریکی شب روی سنگ فرش های بارنداز مینشستیم و پاهای برهنه را توی آب می کردیم می وقتی در شب های محتابی بدون وجود روشنایی می رودخانه را ببینیم به طرف کشتی شکست و قرازهی که درست وسط آب قرار داشت شنا می کردیم. روی نیمکت آهنی می نشستیم. جایی که قبلا ناخدا و همسرش می نشستند. کابینی که پشت نیمکت واقع شده بود را از مدتها ها پیش برداشته بودند و ما فقط می توانستیم به یک میله آهنی تکیه بدهیم. در قسمت پایینی کشتی آب قلقل می کرد. ورونیکا را بعد از آنکه دختر ویک ببرد در دفتر مشغول به کار شده بود و اخراجش کرده بودند به ندرت می دیدم. یک سال بعد، او با یک مرد بیوه که مغازه شیرفروشی داشت و مغازهش خیلی از خیابانی که اکنون من در آنجا زندگی می کنم فاصله نداشت، ازدواج کرد. وقتی ماشینم را برای تعمیر می دهم و در نتیجه با ترانوا سرکار می رفم، ورونیکا را می بینم که در قسمت پشت مغازه نشسته است. هنوز هم بلند و خندان و سرحال است، اما با این وجود، من گذشته این هفت سال را در سیمایش می‌بینم. میبینم. او چاق شده است. لباس بچه روی تناباویزان است. لباس قرمز رنگ متعلق به دختری کوچک و لباس آبی رنگ باید متعلق به یک پسر بچه باشد. یک بار که در باز بود ورونیکا را در مغازه با دستهای بزرگ و زیبایش دیدم که مشغول خالی کردن شیر است. بعضی وقتها برایم از پسر امهی که در یک کارخانه نانپزی کار می کرد، نان می آفرد. اصرار داشت که به من از لحاظ تغذیه برسد و هر بار که به من یک تکه نان می داد، دقیقا جلوی دیدگانم قرار می گرفتند. اما یک مرتبه که حلقه مادرم را به او نشان دادم، در چشمانش همان نور هرسی را دیدم که در چشمان زن بیماری که هم تختی مادرم در بیمارستان بود، وجود داشت. تیه گذشته این هفت سال دقیقاً از وضعیت قیمت ها با خبر بودم و به همین دلیل شنیدن واجهی مناسب و ارزان انوز برایم قابل تحمل بود. هیچ چیز ارزان نیست و قیمت نان هم همیشه کمی بالاست. چم خم کار دستم آمده بود. به این معنی که آنقدر به آگاهی فنی و تخصصم تسلط داشتم که دیگر برای ویک ببر، به عنوان یک نیروی کار مناسب، آنچه طی سه سال گذشته بودم به شما نمی آمدم. حالا یک ماشین کوچک دارم که پول آن را نیز پرداخت کردم. از سالها قبل مقداری پول پسنداز کردم تا دیگر به ویک ببر وابسته نباشم و هر زمان که خواستم، با رغبای او به همکاری بپردازم. اکثر آدمهایی که با من سر و کار دارند، نسبت به من مهربان، خوش اخلاق و سمیمی هستند، همان گونه که من همچنین رفتاری به آنها دارم، همه چیز قابل قبول و تحمل است. من قیمت خاص خودم را دارم، قیمت دست ها، قیمت آگاهی فنی قیمت تجربه خاص، قیمت رفتاری دوست داشتنی با مشتریان. چون همه جذابیت و رفتار بیعی به مرا که در محبوبیت من، نخش ای داشته از ستایش می کنند. زیرا من نماینده ماشین هایی هستم که حتی تعمیر آنها در تاریکی را نیز فرا گرفتم این قیمت را می توانستم همیشه بالا ببرم درهای ترقی و پیشرفت به باز شدهاند و وضعم خوب است و قیمت نان همانطور که در اصطلاح گفته می شود در طی این مدت با حقوقها برابر شده است دوازده ساعت در روز کار می کردم هشت ساعت می و چهار ساعت هم به اصطلاح برای اوقات فراغت باقی می ماند اولا دختر رئیسم که نامزد من هم نبود را می دیدم. در هر حال به شکل رسمی با هم نامزد نبودیم اما امری کاملا طبیعی و بدیهی بود که با او استواج خواهم کرد ولی خواهر کلارایی که در بیمارستان وینسنس کار می کرد. کسی که به من سوب، نان، پودینگ قرمز رنگ و سس زرد گوگردی رنگ می داد. کسی که مجموعا شاید بیست نخ سیگار به من هدیه داده بود پودینگی که امروز دیگر برایم خوشتم نبود سیگارهایی که امروز دیگر نمی خواهر خوهر که از مدت ها قبل در قبرستان راهبه ها به خاک سپرده شده است و خاطره سیمای اسفنجی مانند و چشمهای غمگین و اشکبارش وقتی میبایستی بایستی دریچه ی را برای آخرین بار می خیلی بیشتر از سایر کسانی که هنگام میهمانی رفتم با اولا با آنها آشنا می شدم شایستی لطف و مهربانی است. قیمت چیزهایی که می پرداخت میکردم را از چشمهای تازه آشنا می و در دستهایشان میدیدم. من جذابیت و ملاحت آنها را در خودم از بین می بردم. لباسهای فاخر و بوی خوش آنها به نظرم، پست و ناچیز می رسیدند تمام متانت و وقاری که در ارزان و مناسب است و من گرگی را که هنوز هم در درونم آرمیده بود گرسنگی را که قیمتها را به من یاد داده بود از خواب بیدار می کردم. وقتی هنگام رقص سرم را روی شانه های دختری زیبا قرار می دادم، صدای زوزه این گرگ را می شنیدم و من میدیدم که چگونه دستهای کوچک زیبایی که روی بازوها و شانههایم آرمیده بودند تبدیل به چنگال های پلنگی می شدند که نانم را از دستم چنگ میزدند. تعداد کسانی که به من چیزی هدیه داده بودند انگار شمار بود. پدر، مادر و بعضی وقتها هم دخترانی که در کارخانه کار, کار میکردند.